در این یک هفته انتظار خانه مرحوم میرزا محسن خان دمی از جنب و جوش نیفتاده بود رعیتهای منبر دوله با صابون و چوبک و آب و جارو به جان کاکل بام تا درز آجرهای کف افتادن صندلی و میز و پیت و خمرهی نماند که جا, به جا نشود و زنگار زدوده به جایش بر نگردن راهها با آبنبار تخلیه و لاروبی شد از پلکان سرداب گرفته تا پلکان بام سیخل خورد آب حوزها را کشیدند و ساروجش را سابیدند شاخ و برگ ریخته درختان را در باغ روفتند تا کارتونک سقف طبیله را گرفتند. مشباغر و ملوک پا به پای رعیتها دولا و راست می و آب و جارو میکردند. کردند رشگدویان در آشپزخانه و پستو و انبار و زیر زمین کارهای مختلف گمارده شدند مرغها را روی آتش کز می‌دادند هویج و سیب زمینی و بادمجان پوست می‌گرفتند کشک و گردو و زعفران می‌سابیدند آب و آب پیاز برای جوجه کباب حاضر می‌کردند سنگ نمک در برنج آغورده می‌گذاشتند شقاقهای گوشت را در ماست و زعفران می‌خواباندند اجاق‌های آجری و منقلهای زغال را در حیاط خلوت برپا می‌کردند زهرا سلطان در میان این همه کار و کارگر میلولید و مثل بقیه عرق میریخت. و از درد استخوان هم شکایتی نداشت به همت ملی زمان برای خدمه مرد پیراهن و شلبار بختیاری با شال کمر قرمز و فینهی سرخ و برای مستخدمی نزن چارغت غالبی آهار خورده و شلیته پرچین و رنگ و رنگ گردید و به پیشنهاد آنژل برای همه از کنتواغ فرانسه دستکش سفید پارچه ای ابتیار شد شمسلطنی در کمک به زن دایی پیش قدم بود و در همه کارها از ساختن گل کاغذی و کوبیدن کاغذهای رنگی گرفته تا رنگین کردن رف و تاخچه و سربخاری سمت معاونت آنجل را داشت. روغیه پی سفارش خانم ها به خرید سیم و سنجاغ و سریشم میان اتاری و بقالی در آمده شد بود. امیرخان که مدرسهش براه بود، این چند روز را با کتاب و دفترش در خانه منفر و دوله میگذران تا از درس و منشق نماند و عباس خان که کپکش خروس میخواند هر چند ساعت به چند ساعت به سرکشی میامد و مشعوف از نتیجه پیکارش میره من از زاف در زندگی هفته اینچنین نگذرانده بود، کارها گویی همه به سحر و جادو انجام میشد دلیل سربراهی شمسلطنه را در نمیافت، ولی بروزاتش را میدید، به گمانش آسمان سوراخ شده بود و فلک آنژل را به خدمتش روانه کرده بود، ولی زمان که انصاف از هیچ کمکی دریغ نداشت و نمیگذاشت، آب در دل او تکان بخورد، منور دوله که الحق دوستی را به کمال رسانده بود و همه امکاناتش را در طبق اخلاص تقدیم مش مشباغر دلسوز بود، حتی در این بلبش و ریخت و پاش در فکر بود که چیزی حیف و میل نشود ملوک کار چهار نفر را از زمین برمیچید و خم به ابرو نمی آورد. اگر زندگی همیشه به این منبال میگذشت که دیگر خم به جهان نمی من از سلطنه که خسایل از را برای نخستین بار میدید همه را به فال نیک میگرفت و به حساب معجزهی میگذاشت که دست تقدیر برایش تدارک دیده است حتی کم کم محاسمی هم برای حضور منیف دیوان و دامادی عبدالله خان می جوست. پدر که نیست لاغل دایی در این جشن و زیافت برای عباس پدری کند. خان نایب هم بالله خدمت گذار ارس وجودش زاید نیست کجا بدون و می توانست دسته های نظامی و را برای چه نیشبی خبر کند. در زندگی اول بار بود که ذهن منزه سلطنه پی آقالیدن و فتن انگیختن نمی رفت. و فقط در خواب خوش و خیال شیرین سیر می آرزوی یک عمرش بالاخره جامعه عمل میپوشید و زندگانی در نهایت سامان میگرفت. گرفت. شش روزی بود که ره سپار غزوین شده بود، همراه رقعی منصف سلطانه که در آن دستورات وارد کردن شکوه از را به جزئیات برای ملسالف صادر کرده بود، از چه کویی بگذرد، در مقابل کدام دروازه خانه بیستد، عروس را که و کجا پیاده کند. داخل کالسگیر آنجل خانم چنان آراسته بود که از هجلگاه چیزی که عصر نداشت، برای همه مهمانان به موقع خبر رفته بود. هیچ صاحب نامی برای شرکت در عروسی عباس خان و شهو ازن از قلم نیفتاده بود. تمام بزرگان دارالحکومه به زیافت دعوت شده بودند. با از منظر سلطنه هر یک از افراد خانواده هم جداگانه چند نفری را به این جشن زیافت خوانده بودند. امیر از همکلاسها ها و معلمانش، شمسلطنه و عبدالله خان از چند امیر لشکر ملی زمان از تمام خیشان آزاده، آنژل و منیف دیوان از ایلچی و کنسول فرنگستان و ینگ دوندا دعوت کرده بودند. شماره مدعوین روشن نبود. عباس خان گفت حج بیستر بید عباس خان خدا را بنده نبود این همه بزن و بکوب و برو و بیا به خاطر او و فردا هم حلو و پوست کنده در کنار از میان دوستان از سید خواسته بود که در شب عروسی حاضر باشد میخوای خوای ماه پیشونی هم وعده بگی اون سب مفتز خانان ماه پیشونی انشالا بعد از نکاح در خلوت در کنار زوجه محترمه وجود بیوجوده یخص و آفازش خوبه نه برای زهمای قمشم شاد بستان پس از سی خلطی با دعوت میکنم امیرخان از شادی همه از این باقع بود به خصوص که مادرش چکنم چرا را کنار گذاشته بود به سهم خود انتظار عروس را میکشید میدانست که شکوه ازم چند سالی از او بزرگتر است و از منفر دوله پرسید سوادش از من بیشتر خال منور سواد هیش کی از تو بیشتر نیست اون روگوش که تو داری کسی کس ماشالله هزار ماشءلل چشم از دور باید برات استندود کنم والاه نه خالمان و راستی راستی میپرسم یعنی من میتونم درسش بدم تا باش برادر شوهری مثل تو باش از خداش که تو درسش بدی البته شمسلطنه در خانهٔ شوی ناگهان به پختگی و بلوغی رسیده بود که همه حوادث را به دیده بزرگواری نگاه کرد از جمله عروسی عباس خان را چرا اطرافیان تصور کنند که او به کرور ثروت برادر حسود است آبروی برادر آبروی اوست اعتبار برادر اعتبار, اعتبار او درست است که زندگی او با عبدالله خان کوچک است ولی یک دنیا که به همین بعض نمیماند نایب که همیشه نایب نیست همین فرداست که فوج فوج سرباز به فرمانش باشد و با امیر تومان ها و سردار جنگ ها بنشیند از نایب عبدالله پرسید دلت میخواست زن تو همچنین ثروتی خونت میاورد آورد. خان گفت دلم میخواست من همچین ثروتی داشتم به پای زنم که تو باشی میریخت زمان از هر حیث راضی بود این عروسی زهر خواهرش را گرفته بود زبان شکایتش را بسته بود با خوانداداش نزدیکش کرده بود توقعات و طلبکاری های گذشته را صاف کرده بود در یک کلام منظح اسلطنه رام و آرام شده بود. فراهم آوردن وسایل جشن هم سر ملی زمان را گرم می کرد و به این ترتیب کمتر فراغت داشت که به فخری و آیندهش فکر کند آیا بچه دار می شود آیا نمی شود؟ آیا اهمیت مطلب را میداند آیا نمیداند حالا که دستش از فخر زمان دور بود بسیاری از اوقات به این فکر میافتاد که درسهای لازم را به او داده است یا خیر و پریشان می شد؟ ای، کجا عمر سفر کوتاه است انگار غر نیست که عزیزان از او دورند همان بهتر که غرق کار باشد و گذر زمان را در نیابد تا فخر و از راه برسند منفردوله از شعف سر از پانه می از منزاز سلطنه دوست دیرینش را که از عالم و آدم نارضا بود راضی می دید. چه سعادتی از این بالاتر که باز مهر و صفاق دوران کودکی را باز یابد غم مسائل حقیر بی حاصل را نخورد، از داده ها و نداده ها شاکر باشد، زندگی را به خود تعلق نسازد. ولله زندگی برای او بد نخواسته بود شوهری چون محسن خان نصیبش کرده بود صبور و چشم پاک و دست و دلباز خواهری مثل ملی زمان همراه و مهربان پسری چون امیر خان یک پارچه جواهر حالا که الحمل شمسلطنه هم به خانی بغس رفته است اباس خان هم انشاءالله مرد زندگی میشد. همه را قدر میداد این عروسی برای این تغییرات و تحولات لازم بود و برای منبر دوله سوای شرکت در شادی دوست امید بیشتر دیدن امیرخان را هم در دل داشت که وجودش جای خالی فرزند را برایش پر میکرد و تمام مهر و محبت مادرانش را به خود نیکشید. با امید خدا ولی همین چند روز هم که در کنار اوست خنیمت اصلا زیاد طلب نباشد. خانه من از حسرتنه صفایی بود که به خواب نمی گنجی. از سر تا قدم نو نوار شده بود پس از سترده شدن گرد سالیان گشبوری گیلوهای اتاق پذیرایی و نهار خوری جلال گذشته را بازی آفته بود و کاشیهای منگوش حوزخانه از نو جلال قدیم را پیدا کرده بود از کوزه های قلیان تا گل های دروازه چون آبگینه برخ میزد تمام قالیها که به آب چشملی شسته شده بود درخشش ابریشم گرفته بود آینهای سنگی جیوه دوباره خورده بود، اکلیل سبز و مطلای قاب تابلوها تجدید شده بود، پردههای مخمل ماشی بر زمینه پشت دریهای حریر سفید خود می‌نمود. ظروف برنج و نقره جلوه طلای زرد و سفید داد. سرف های دو سمت خیابان باغ با گودهای شیشه‌ای و شرابه های کاغذ الوان تزیین شده بود. شمهای قدی کافوری زیر مردنگی های خوشتراش سراسر راه را روشن می کرد. از زیر سرف های زربی دالان و سابات فانوس های رنگی آفیزان بود و در گوشه هر اتاق شمدانی بلور و چند شاخه و پای بلند قرار داشت. میان درختان باغ سینکشی شده بود به استکانهای و استکانهای افت مجهز به پی و فتیله در لابلای شاخه های لخت نور میافشاند و باغ را ستاره باران میکرد. تاق تاغ به مبارک باد قدوم تازه عروس جلوی در بسته شده بود، سراسر منجوغ دوزی و مزین به گویهای نغریی. انجل خانم همه این طرحها را داده بود و در اجرایش نظارت کرده بود ولی آنجا که کارش از همه هنرمندان تر بود در گلارائی منزل بود. در لابلای پیچک های خشک نمای امارت گلهای درشت آفتاب گردان نشانده بود که خود از سیم و کاغذ کشی ساخته بود. در میان همه حوزها و آب خانه، تخته چوبی پوشیده از گل برگ انداخته بود که زیر نور چراغ پیسوز چون سبدی گل تازه می نموند، همه گلدانهای منزل آکنده از سوسن و نسترنی بود که از گرمخانه سفارش داده بود. صفره عقد تماشا داشت از سینی اسپند تا کاسه اصل همه از بنور زنگاری بر ترمه لاکی چیده شده بود با شمدان و قاب آینه میناکاری و قرآنی در محفظه مزین به دانه های فیروزه دیدنیتر از صفره عقد صفره های بود قدحهای مرغی عظیم برای آش و افشوره کاس بشخاب چینی برای هفت رنگ خورش از مصمای بادمجان تا فسنجان قیماخ، آب های کاری برای تهچین و شیرین پلو و چلوی زعفرانی مجمعه های برنجی برای بره های بریان و های کباب و مشربه های آب و دوغ و شربت و آبخوری ها و بشخاب ها همه از بلور سبز و صورتی، در چهار اتاق بر پارچه های تراز و غلمگار پند بود و پنیر پوست و ماست کیسه و قای مربا و کاسه ترشی جای به جای. خونجه های شیرنی و میوه، کاسه نبات های رنگارنگ، زرف های یاغوتی، انار و لرزانک زردالو و یختر بهشت و مسختی در همه اتاق فت و فراوان و از شمار خارج بود. دسته های موزیکانچی غذاق در اتاقهای بیرونی میزدند و دو دسته رقاص و تار و تنبورزن در اتاقهای اندرونی به شیرینکاری مشغول بودند و سائل آتشبازی را در انتهای باغ متخصص فن نظم داده بود تا مشباغر به محصر رسیدن کالسکی عروس و به آواز مبارک باد و تیلش را روشن کنند. مدعوین دست دسته از راه می و در هر گوشه خانه به نظاره تزینات پاسوس میکردند و تحسینشان را از این آزیموندی پررنگ و برنگ به نحوی بیان می‌داشتند. ضیافت زیافت حتی از چشم حاسدان در نهایت جلال